و بردر و, و مادر احیاناً گاهی درسن خوندیم این زبون در 12 سال بعضی ها پیشتر، بیشتان شدن، بعضی ها گرفتن بعضی ها چند تنگ خوندن و فکر میکنن که خب دیگه حاصل رو بلد مثلا این رویه خیلی در ایرونیا هست تو ما به یه متوسط بگید که آماسا شکسی رو بگوی یا فکر خونه این ولد نیستن با درست بکنم من درست نخونه ولد نیستن یعنی صرف انگلیسی هستدن رو فکر نمی کنه که بنابراین هرچی به زفن انگلیسی ولدی اما متاسمان در فارسی اینجور نیست و بچه ها خیال می که خوب درست فارسی چیزی در نوع ورزش و نقاشی رو مثلا اینا اینجور نیست به ساعت دلیل اینجور نیست اولا اینکه خودش بسیار درست مشکلی دوم این که شما به لخره ایرونی هستین از دو حال هم خارج نیست یا بعد میخواهد در ایران کار کنید یا میخواهد اینجا کار کنید به صورت دیگری که ندارید سلام علیکم بیا بیا تا هم اسمتو بینیم این فرشته تنبیلی بیستید به دیمان اگه ای رو میخواید کار کنید. که باید سوار باشید زبان و مسلط بشینید نوشتن چونم هر اداره یه میخواید کار کنید که گزارش کنیدتانی ریپورت کنید که بقولت یا اینجا میخواد کار کنید اگه اینجا میخواد کار کنید چه امتیازی از این بالاتر در هر رشته ای که کار میکنید که بگید که من یک زبان رو خوب مسلطم بسیم و تمام جزیاتو درک میکنم میشونم میدونم این خیلی برای شما یه محضیت یه بدتری نسبتی کسان کنابراین حالا بگذاریم از این که شما ایرونی به دنیا آمدین و این دست کسی نیست یا هر کسی بلاخره نه منبکتش انتخاب میکنه نه رو انتخاب میکنه نه پدر رو انتخاب میکنه اینا دست آدم نیست بنابراین حالا ایرانی هست و این نه خوبه نه بد، هیچ کدون یعنی ایرانی بودن نه اصباب سرشکستگیه، نه اصباب افتخاره ایچه میگه من افتخار میکنم ایرانی هستم، بیرفت بگیه برای اینکه در اختیار رو نباتی. من افتخار میکنم امریکایی هستم بازم بیرفت اما ایرانی خوب بودن ایرانی دانا و فهمیده و درس خونده بودن انسون بودن این افتخار داره همطوری که اهل هوشه باشه اهل بنگلدهش هم باشه اگه خوب درس خونده باشه فهمیده باشه فرهیخته باشه تحصیل کرده باشه اون اصلا به افتخار که من آدمی هستم که افتخار میکنم که در بنگلادش در دنیا آمدن اما خودم به اینجا رسوندم. نه هست اول این سما با این به هر جهت این ایرونی بودن از, از, از رگوپه شما بیرون نمیره هر کاری کنه یعنی <تصفيق> اجبارا ایرونی هست میخواد بخواد میخواد نه بمیتونم بخوایید که نباشین بازم نمیشه اینه اینکه هیچ آدمی نیست فکر نکنه که کاش که پدر من یکی دیگه بود یا کاش که مادر من یکی وقتی بچه است سال دیگه شما حضور شدید حالا عقلتون میره و بچه ها بچه شام میگه آها این کار شد از صبح من با تشریفات و یکی بیاد خبردار باید. تو باید با رو سپون یاد بکیرو باید با رو از سوالی یاد بکیرو باید برنامه پر داره میگه من یه روز نمیتونم برم نمیدونم برای خودم تو کوچه را برم بچه گده هم یه خود این زندگی شد ما یه یه ها به دل اون بخواهد تا سا چهار ساله نتونیم ب هر کسی بعد اون یه کاشگ هم سر اون بودم اون کاشگم پس سر اون. ولی وقتی بزرگ میشه آدم میشه میبینه که پدرش درست درست در یعنی همون کسی که باید باشه و بهترین کسی که میتونه پدر این باشه یا مادر این باشه همین آدمایی است که هست و عل رسید اینو این ایونی بودن هم, هم. بنابراین شما چون ایروی هستید خود خود و هیچ جور هم از زیرش در برید، بهترییه شایسته ای باش به دو ترتیب یکی به اساس در من هز. من چند بار گفتم. گفتم که این رو ما اینجا میدیدیم خودمون رو هم, هم تو بودیم ازثر اون دادن و خوندیم و بعد یاد گرفتیم و دررفیم امتحان دادیم و نمره گرفتیم و بعدم درس و یادمون رفت. اگر درسی که من تو خونده بودم همش الان یادم بود به دانشمندی بودم خودم ولی نیست. ارسا یادمون ولی یه درسی بود که هیچ وقت یاد آدم نمیره یاد آدم لازمون نرفته یاد منم نرفته اون عبارت بود از روش ها و منش ها و طرز اخلاق و برخورد و راهنمایی های استاد که گاه یک کلمه حرفش زندگی آدم زیرو رو میکنه من یادم سال ۲۵ در رشته سیاسی دانش که درسی خوندم استادی داشتیم که اگه هست خدا هفتش کنه اگرم نیست خدایش بیا به نام دکتر عزیزی دکتر مختن عزیزی استاد خیلی درجی یک. این آمد گفتش که ما در اینجا علوم سیاسی درس میدیم علوم سیاسی کتاب نداره من جزوه میگم جزوه مینسیم شما جزبه هم هفت سال عوض میکنم فکر گرفتن جزوه پاسادیا نباشیم که <تص> از و بعد هم دانشوی علم سیاسی باید لعقل دو تا زبون خارجی دیگه نه به اقل یه زبون با بلد باشه ونه اینکه بیشتر کتاب ها به زبون های عروفباهیه بلد کسی بلد نباشه اینجا ویل محسله یعنی رشدی این رشده نمیکنه. من همونجا، من فرانسو میخوندم در دبیرستان و به عنوان شاگرد مدسل فرانساً بد نبود یعنی نمره هم خوب بود اما چهار ساعت در هفته فرانسو درست دادن تو مدرسه سر کوچه با معلم ایرونیی که میومد فرانس رو به فارسی میخوند و درس میداد این چه از یاد یاد میکره؟ پل دوره دبیرستان ما مثلا یه تکستی که خونده بودیم شاید در تمام این شیش سال رو پنجل صفحه نمیرسیم تو این که فرانسه نمیشه که بود ولی خوب بود دیشتم خوب بود نمراها خوب, نمراه خوب بود همونجا من دست گرفتم که بعد یه رساله مینامیشون سال 3 و 1 همونجا دست گرفتم که بردت نمیشه که آدمو من دستاله ترجمه میگرم فرانسه که میگن بعد این خوب زور میارم بهش و بعدم اصطاد راهنها برای همینه که اگر بلد نبود بره ازش به پرس اصطادی یعنی ندارم. فشار رو آوردیم، ما فرانسا رو یاد کردیم یه رساله نوشتیم برای استاد و ترجمه خیلی بدی هم کردیم بهشون دادیم ولی من دیگه خوندن کتاب فرانسا رو یاد کردم و رعبون شدم کشم و بعد شروع کردم این و شروع کردم و سال ۲۷ اولین کتاب رو ترجمه کردم کتاب مرباری، دود ما در اشترین بگرم رو ترجمه فرانسا منتشر. ترجمه کردم سالی که از منبکت در و این خب خیلی درس بزرگ بود میبینی که تا الان من یادم نرفته مسئله بزرگ اینه که شما اینجا تو مملکت خارجی هستین اولا گفتم اگه از فرهنگ و آداغ و ترتیب و زبان و تمدن بی بیخبر باشین رجال بزرگ منبکتون نشنستین آیا می‌خواهی که رو می‌شین می‌گه خب راجع و خیام چی می‌دونی؟ بر بر نگاش کنی ویسه بل بل لال خب این آدم می‌اد پایین دیگه این یکی که اگه مسلط بشین به کار فرهنگ و چیز من بکسته رو نشون اینه که دوم این که شما بعضیاتون ممکنه بریم که ده فورهی مثلا که هیچ ایرونی غیر از شما نعیده باشه اون شهر یا تو اون ده. بعد شما میشین چی؟ شما میشین سمبل مملکت ایران و ملت ایران. اگه آدم بدی باشین کسانی که شما رو می‌دونن فکر می‌کنن که این قوم هاشون بده. دیدین ما؟ دیدین باشی و بود. بود. اگر اگرم خوب باشی درست همینه، یعنی درست نظره یعنی برای مردم در حقیقت شما سفیر مملکت خودتون هستین در خارج. و اینو باید یاد می‌گیریم انسون بودن و انسون شدن و دورفتی رو راستی رو کار کردن و چی یاد گرفتن و اینا رو باید یاد می‌گیریم درسته که ما یه چیزی بگیم اونجا بعدم ما هم می‌یام می‌گیم گفتم بعدم یادتون میره ما هم یادمون رفته شما هم یادتون میره اون مسئله مهمی نیست و کوشش من همین هم هست که یه گونه سعی بکنم که روی این های تربیتی و روی جنبه های انسانی و این که ما آدمای چه آدم بودیم چه آدم داشتیم چی هستیم اصلا رو اینا بیشتر من میکنم و تون حالا تک نداریم به اصطلاح من میشه دیگه بگیرم برمون در خدا رو همه تون بویش نسمت. یه صفات امریکا در ازنان به اداره اصطلاحاتی داشت ده خدا در سال سی و, سی و مرده ها یعنی این از چهل ساله الان یه دره اطلاعات صفت امریکا بود یه کاغذی نوشتن به ده خدا که استاد معترم جناب آقای ده خدا اگه ممکنه شما شرحال خودتون رو چون خیلی مرد برجسته دانشمندی هستین شعرحال خودتون رو برای ما بفرستین که ما در اون یه چیزهای داشتن در این نشتیه خودمون بکنیم. و اگر هم نفت این نشیه ما که اسمش افوار و روز بود مثل که نظری داریم خواهش من بینیم به خدا در جواب می‌نویسه که آقای پلانک هست خیلی ممنونم که از من چیز کردیم و خواستیم که من زندگی بدم بر شما زندگی من چیز قابل ملاحظه‌ای درش نیست و مکرر در مکرر ده ها بارم در مطقوعات ایران چاپ شده و نیست که کسی ازش خبر نهیش که بشه اگر هم علاقه من جاهای مطالب چاپ شده باشی. اما چون گفته بودیم که اگر نظری دارید بگو من خواهش میکنم که این مطلبی که من میگم نه به زبان فارسی و برای فارسی زبان، به زبان انگلیسی و برای هموطنانتون بگین که اینجا است که در زاهدان یه تاجری مثلا یه ملیون طور همه اون روز مال رو میاد یه شطردار رو میبینه میگه که من ده تا بار شطر مال دارم کالا دارم هم برستم تیرون به کارمسرهای پولانکه چونکه باش آقا چقدر میشه کریش میگه مثلا این قدر بعد نصف کریاری میده به این آقای شطوردار اصلا اسم شطورداره رو نمی پرسی اسم آقا رو نمی پرسی میگه میری تهران فارمانسرای فرای سرای امیر بار تحبیل میدی پسکرایت هم نصف کریاره میگه صدها ساله تو این مملکت این روش عمل میشه و تا الان یک بار اتفاق نیسته که یک دونه سوزن از این باری که این داده به این شطوردار ناشنار و فرستاده کم شده بشه به مردم بحشی هست اینقدر ما رو نگیمین مردم بحشی این نامه یه هستی نهشگی این خب ما مردم هم این مردم رو شما سو هم به همکیتون شما خبر داشتیم که این ساربونه شطورداری که واسه سن نار محتله. اینقدر امانت داره صداقت داره که یه مدیون بارو میشه در دستش بردره بره و اصلا نگاهش نکنه معرومی لس لسنجاویس ناامنیه و اگر کسی حس کنن که دوی سولارفول داره از من یکهش از جوش در میارن یا دستش باشه دست رنجیمی بودن و تو ترمون خود من پارسال رفتم جلوه سفرس انگلیس خیابون من چهری ولی فلمان پیداستی روی روی سفت انگلیز بگو مثلا ساعت نفر ست و ده بیس نفر یک شیفتتشون بود دسته دلار هم اونداری آوا دلار داریم آوا فرانک فرانسی داریم آوا پاند داریم اگه یک کسی با یه هفتیر شکسته میامد اونجا اینا رو لخ میکرد هر نیم ساعت 10 ملیون شاید پول درست ولی هیچ وقت این اتفاق نیفتاد یعنی همین مردم وشنه بدبختی که اینقدر از گرونی می یک کدومشون این کار رو نکردم تو این مملکت متمدلی که اوج تکتولوژی دنیا هست و چه و چه نمیدام عبر قدرت هم, هم هست یک چه مردم این رو می پیدا کنیم. کنیم بنابراین مسئله می که بد بدونین اینا خب دیگه این دفعه که چطل نویسی نمی کنید <تصفيق> حال دیگه محاسن گذاشتی و... بله ارز کنم که در از های دوستان همه توی پیش خانون جودیه هم برقه ها هم... برقه ها خیلی چیز پیپر ها و هرکی خواست میتونه داره پیگیره به تا نظرم که از هم نگاهی بله این داستان کار ما سین مقداری هم میگیم و فکر کردیم گفتم که داستان سیاهوش چون چیز بود کردیم خیلی کم ازش قرد شدیم و این آقای آرش دریابندرین هم گفت که من از روی نسخه خوب درست میکنم که الان در باره گفت درست میکنه انشالله میاره برای روز بعد تا وقت ما اون قسمتی که درست داریم. خیلی سریع ازش راحت میشیم و بعد دقیق دقیقتر میرسیم من قسمتی دست نایدیم خیلی خیلی داستان زی مهمیه در ضمن، بنده یه سری نوار منتشر کردم که حالا اینجا هم قصد تبلیغ برای فروشش ندارم اصلا ندارم این رقفه در پونسط پونسط من فقور تمام شد. ولی بعضی از دوستان اینجا دارن یه قسمت از اون نوارا راجع به داستان سیاه و خیلی اونجا مطالب گفته شده که شاید نرسیم اینجا سر کلاس اون مطالب رو بگیم اگر تونستید و اگر تونستید تراکر که این نبار رو داشت مثلا افسون آشکی میدونم که داره اگر داشت سعی کنید این قسمت مربوط راستم سیاهاش اونجا گوش کنیم و یعنی اگرانا یه مزاری یاد داشت برداریم برانیس اونجا خیلی حرفا زده شده که اونجا نیست اگرم گیر نیوردین برام به هم بگین شاید من کاری بکنم در اختیارتون برس این موله ای. پس کارمون شد داستان سیابهش یه مقداری ما قاعدمون اینه که در باره فردوسی در باره هر کسی که کتاب شد نطلب شد درسی دید یه مقداری حرف بوده که این کیه این کیه چطوره چی بوده کجا و اینقدر از این مسائل که وقتا در تهران سارای اولی بود که دانشی ها شدونم دانشگاه سال 42-43 کنکور داشتم کرد یعنی کنکور رو با دست بعد سوال که یکی از بود که سعدی در دوره کدوم سلسله از سلسله های سلطنتی ایران زندگی می‌کرد. خب اینو بچه ممکنه اسم اون سلسله ها ندونه. اون خیلی مهمی. یا مثلا یکی عوضی بگه. یه بزرگ مردی نوشته بود که سعدی در دوره هرخانشی زندگی می‌کرد. آخه من نشمه دوره که دو بار زبون این مرکز اصلا عوض شده یعنی در دوره افغانشی فارسی واسطون بوده بعد از اسکندر فارسی واسطون رفته از بین یه زبون دیگه اومده به نام پهلوی که پهلوی هم تازه دو تا بوده یکی پهلوی اشکانی بوده یکی پهلوی ساسانی بوده در طول هزار سال هم اینا بوده بعد اینا هم رفته بعد از اسلام این فارسی دری اومده این بعد خدا نمیدونه ساسانی اینه کی دوره اخوانش خیلی بعد دیگه این است که ما سعی می‌کنیم که این مقداری از این چیزا بگیم و مثلا بگیم که شاهنامه خودش یعنی چی اصلا خود کلمه شاهنامه نامه به معنی کتاب کتابم به معنی نامه و هر دو به معنی نوشته نوشته حالا گاه این نوشته دراز گاهی کتاهه مهمی هر دوشو میشه گفت نامه یا میشه گفت کتاب سما این چه در قرآن کتاب به معنی نامه آمده دو تلون. و نامه هم که خیلی... همین یکیش همیش آهنامه یعنی کتاب شاهان و این یکی هم نیست قابوس نامه یعنی کتاب قابوس سیاست نامه یعنی کتاب مربوط به، سیاست و نظر این خیلی زیاده بنابراین نامه، یعنی کتاب... کتابم یعنی نامه و نامهم یعنی نوشته میخواد کوچیک باشه میخواد بزرگ منطقه. امروز ما نامه رو برای نوشته کتاب بکار میبریم و کتاب رو برای نوشته بلندتر در ضرم کتاب عربی و نامه پارسی خواه این اما شاه شاه ارزا دستوری چیه؟ چه کلمه بگیم؟ بگو تو بگم؟ صفت؟ صفت؟ اسم کسی نمیدارن شاکه <تصفح> <تصفح> اس اونه که به یه انسانی یا به چیزی یا حیبونی اطلاق بشه میشه اس. یعنی بچه که به دنیا میاد یه اسم میذارن روش اون اسم حسن حسین تقی فیشگن رو داره شاکه یعنی شا اگر به صورت اسم به کار ببرن میشه پسر من اتفاقا شهری شهریار اگه به معنی فرم روا کار ببرن باز میشه صفت صفت مطلقه صفت به همین دلیه هست که مثلا آخرین شاعران هستی محمد رضا بود رازش میگه یه نادر بود، یه عباس بود اون اسم، منتها ها، بسیاری از این صفت ها هستن دقیقا جانشین اسم میشن میگن صفتی که به جای موسوس میشینه یعنی همون محمد رضا پهلوی که می یه جا نه که محمد رضا آن یا آقای پهلوی آن می شاه یا پنده مثلا که دروغکی قوای استادی انداختن کوره هم و هم می گم استاد ماست، اسمانی استاد این <تصح> اسمان من دیگه، این صفت، منطور که به جای محسوس میشه. این یکی اینکه خود شاه چندین معنی داره تازه. یکیش معنی فرمان دواز اون رئیس من ب اینو همه میدون. ولی بسیار معنیایی دیگه داره یکی از اون معنی ها نوع برجسته و بهتر از هر چیز شمیوهشاط شاهراه شاهکار من از آیر اینا صد تا میترسیم برنابراین شاه یکی از سمبول های بزرگ زبانی پارسی هست خیلی هست و همین گرفتاری رو بده کرد موندن دیگه میخواستن اسم شاه رو خب، خب نمیشه که شاه میبر چی کنن شاه تو تو کنن اصلا درست نیست؟ یعنی چیز نیست؟ نوع برجسته و بهتر و قابلتر و بهترین از هر چیزی بشه میگن شاه بازم سفر میگن خب حالا یه وقت شاه میگن که آدمی هست میگن شاه آمد اونجا وقت آدم یه وقت میگن که شاه به معنی کل شاهانی که در ایران یا در همه دنیا بودن یعنی یک جای اسم خاص میشه، یه وقت جای اسم عام میشین شاه ها میگنه یعنی مطلب شاه نیست که عصد که میگن یه عصد معین مفتوض نیست تمام عصدهای دنیا میشه عصد خب. حالا، شاه نامه کتاب یه شاه معاید کنید کتاب شاه معاید کنید یه گروه بنابراین یعنی کتابی که مربوط است به شاهان کتاب شاهان درسته؟ یه جور میشه معنیش کرد چی آدرس نامه نوابش می‌رسید ببینم نو میت نورباج جستو می شد یعنی بهترین کتاب یعنی بهترین کتاب و حقیقت این است که ما کتاب درجه 1مون در در تمام ایران شانونس ملک و شوهره شاهنامه هست می اقراق قرآن عجم شاهنامه هست می اقراق قرآن عجم رتبه داناوی توسی رتبه پیغمبری گفت پیغمبر که دارند اهل فردوخس برین بر زبان لفت دری یا یه زبان مادری نی عجبگر خادن فردوس فردوسی و وز. کوب و وصلی صبح ربط خب ما چرا اینقدر به این اعترام میذاریم این شاهنامه اوهی میگیم اوهی بعد علا نشتم دارم چکش میزنم که شاهنامه چنین چنانه دلیلش این است که احتمالاً اگر شاهنامه نبود امروز من شما به فارسی حرف نمیزد به هم دکون من تخته میسود همه شما یه چیزی کمی میکنه. تعلیم خواهد کرد سالها. اسلام در کجا وجود اومد؟ در کجا اومد؟ در عربستان. زبون مردم کی بود؟ عربی. در دوره خود پیغمبر اکرم، اسلام هیچ وقت از اون شهر جزیره عربستان گیرون نیامند همونجا تا اونجا بود هیچ مشکلی وجود نداشت همه مردم عربی بلد بودن قرآن عربی بود حرف عرب زادنشونم عربی بود حت عرب میزدن این میگفت اون می در دوره خلفا به خصوص در دوره خلیفه دوم عمر و بعد اسلام شده شد از شعب جزیره عربستان آده بیر کجا را اول خواهر میانه سوریه و لبنان و فلان و فلان و فلان, و فلان. مصر ایران با بعد جاهای دیگه اینا هر کدومی زبان داشتن برای خودشون دیگه این که عربی هفته میزدن مصر که عربی هفته میزد شیش هزار سال تمدن داشت یعنی تمدنش سه هزار سال از مال ما قدیمتر از مال ایران سه هزار و فونسد سال قدیمتر. و اصلا کسی کتاب به تاریخ قدیم مصر رو میخونه اگه بخونه حتی یک کتاب کچون رو بخونه حس میکنه که اگه تمدن اینه ما ایرانی ها اصلا باید بریم کشت خود با این حال مصری ها زبونشون یادشون بره الان مصر خودشو ممکت عربی می سعیم می کنه که بگی من رئیس منم که عربی تو خیلی وفعت رو جمعیت داره و عربان قبولش نداره میگن تو عرب تقلوبی هستی تو اصلا عرب می زبون مردم مصر در بین یه اقلیت بدبخت که فقیر بی سواد که مسیحی هستند و پنبه می به نام فلاحین یعنی کشاورزان اونجا فقط با مونده و اگر شنیده باشید اون شامپولیان معروف شامپولیان شنیدیدی اسمشو نه؟ در فرانسه تی ایج صدای صدای شیل شامپولیون که آدم نابغه درجه یکی بود محاصر ناپولون خیلی هم متاسفانه در هم مرد این آدم همراه همراه ناپولون رفت مصر چون بسیار با استعدادی بود توانست که این رمز این هیروگلیفو یعنی این خطای نسری رو که نمونهاش عکس شدیدیم اینو برای اولین بار به قول شما ها دی یعنی بخونید و این اولی زبور باستانی بود که یه آدمی خونده شد و به این تحصیل راه باز شد برای خوندن باقی زبون و باقی خط و این سید که خیلی هم زود از کردم مرد توجه کرده بود اول بلد نبود که یک کلمه نه, نه، مسی بلد نه نجیری بلد نه چوارا نبود که اونجا توجه کرده بود که زبون اون های فرلاهین رو بهشون میگن قبطی که فرنگی میشه کوپت کوپت قبطی توجه کردون که زبون قیبتی های مصر خیلی شبیه به این نقش ها زبون یاد گرفت زبون کبت رو باید چون رو خوندنی با خوند درست حالا این نیست مصری زبون داشتن خط داشتن زندگی داشتن اسلام اومد یادشون و زبونشون فراموش کردن عربی این سوریه جای فنیقیه فنیقیه که اسم انگلیسی رو انشاالله میدونیم فنیشی هم فنیقیه ها اولین قومی هستند که الفا رو اختراع کردیم و برای اینکه بدون اختراع الفا چقدر اهمیت داره در پیشرفت فرهنگ بشر باید بگم که یک قدمی بوده مثل کامپیت یعنی به این اهمیت و قدیم قبل از افتراه الافو اگه ما هستون یه خطی ریادید این چارده سال میگه بچه های بابلی و آشوری چارده سال تمام باید مثل مدرسه که مفصل میخوردن تا فقط نوشتن خط بابلی ریادی و تازه خط ریاضی یاد می‌گرفتن، پر غلطه. یعنی این خط نش از هزار علامت داشت، همه هر وقت که تلاش جواب بدین بچه‌ی بدبخت. اون نمیشه که اختراع الفبا موجب شد که این هزار علامت تبدیل بشه به 30 تا. الان همه زبان‌های دنیا الفبا داره و الفباهاشون بین, بین 27 تا تا 34 تا 5 تا. اون علامت‌ها رو که یاد می‌گیرید خبش می‌تونه بسید، هم خبش بسید تمام علفه‌های دنیا از علفه‌های فینیقی گیره بسید یه یعنی همچه خواهی یادش درد زبون داشته و چیز داشته بود، اصلا مختاره علفه‌هاست، صورت عرب اولین ماملکتی، اولین ماملکتی که اسلام فردی ولی عربی رو نفردی رو ایران گفتن اسلام از جا بود. اما ما زبونمون بر عربی حتی تا مدت ها نماز به, عرب، به فارسی میخوندن در تاریخ بخارا کتاب شنان تاریخ بخارا اونجا آمده که مردم بخارا اول نماز نمیرفتن بخوند یکی یک دینار بهشون میداد حاکم که از سر نماز بعض که رفتن گفتن ما زبانون بر نمیگردید عربی نمیتونیم خواستیم نمیدونم چه تو شد بریفت کردن در صورت ایرونی ها زبانشون فراموش نکردن یکی از دلایل بسیار بسیار مهمه این که ایرونی ها فراموش نکردن این از که ما یک کتابی شاهنامه داشتیم و پینیقی و مصری و اینا یه چنین کتابی نداشتن اهمیت این کتاب به این حده که شما که میدونین حالا دانشگاه که ما دانشگاه نشیدیم با جوشت کنیم ولی سالیان سال، هزار سال فقال و چطقال و میوه فروس و پینه دوس اینا همه می تو قلب خونه می نشستن یا دو یه بابای جمع می شدن با دهن باز که این داستان آمه براشد پول شما هاش ما پول نمی و باید یه اون نرکالا اونجا کنم که با این داستان رو این دو شرط داشته که اینجوری بوده یکی این که این داستان ها در حدود سه سال سابقه دستی در ایران. خود فردوسی میگه که یه کتاب کتابی دیدم من به نصر به شعر نبود هده اقل دو سال عمرش یکی نامه دیدم برای داستان پسندیده از دفتر راستان پسامنه کوهن بود و منصوب بود تبایه رفیونده او دور بود. گذشته بر اون سالیان دو هزار که برتر نیاید شما یکه اگه بیشتر نبود دو هزار سال سال, سال هزار سال همه از فیضوسی این سه هزار سال سه هزار سال مردم ایران این سال میگن یعنی اون در فرش فروش که اتفاقا آذربایجانی هم بود زبون بود میومت آمد تو قبخونه من یادم من یه دور ها رو پا نقل نشستم تو قبخونه شاتر از قدر سرچشمی عرض کنم این که می آمد هی در ترکیش می گفتن. این حقیرتا خود چون یه چیز میتونه دون نبه یه رستر می دونست نبه یه گی و بودر می دونست یعنی شما که پدران رو بودن ها. اینه که وقتی که مثلا یه پسر پهلمان یه گفتن هر ایرانی خودش رو لینفت میدونه سرین کن رسته اینقدر توی جان و تن مردم بعد هم تردوسی رو به یه زبونی گفت کردم مردم کردن مردم کردم. در نتیجه این زبون فراموش نشد کتاب شاهنامه کتاب گونده ای در روز ۶۰۰۰۰ بیت سابقاً چاپ نبوده که با خط نمی مینوشته کاغزم نبود یعنی کاغذ ها کوچولو کوچولو بود بوده نه می‌کنه مثلا بزرگ کاغذ بسردن و دست اصافه میده بنابراین صحفه های بزرگ کاغزم که به درده نوشتن کتاب نزد شانها لوکسی بوده گرمون بوده خود کاغذش بعد یه بابایی که امروز می‌خواست بیشی نشانها رو بینیویسه این چه تمومی شده کارش؟ سه سال بعد اون داره دیگه شهت دار نزال خیلی طول میکیشه و اون وقت یه بابایی که پولدار بوده باید یه کاتبی رو میگفته آتان اینقدر دستموز بگیر اینم پول مهنم کاغذش تو بشین بینویست اما کاری که دو سال طول میکیشه این وسط ممکنه جنگی بشه ممکنه اون یا که وقت دست داده بمیره ممکنه اصلا سر نظر کنه دلشو بزنه خیلی سخته که این کار تمومه یعنی یک کتاب کوچولو نیست، مثلا گلسون نیست که آدم بگیره خودش یه هفته بینیدی یه دیوان هفت، دیوان هفت، چهار هزار بیده شهر هزار بید با چهار هزار بید حساب چه چیز کوچیکی نیست، تول بنابراین هزار جور ممکنه، این کار ناتمانونی درسته؟ با تمام این احوال الان در کتاب های عمومی تاخونه هایی که همین مردم مراجعه کنن بیش از پون تا نسخه کامله تا متمامش هست که تمام تهرد شده شنافه هست حالا چقدر چالمه تو که های خصوصی مردم هست با زمخصی ها اینکه میگه مردم اینقدر دوست نداشتن اینو که نمی نوشتنش که چرا از گرشاستنامه عصدی کتاب هماسه دریجه دو یعنی بلافاظه باز فقط ست و نست <تصفيق> این نشونش چیه؟ حالا که چاپ اومده هیچ سالی نیست که یه بار دو بار کتاب این گندگی چاپ نشه خب اینو مردم میخرنن اینه نمیخریدن که چاپ نمیکرد و ما میخرن دیگه <تصفيق> گرشاز دومه عصدی اول بار سال هزار سیزده چاپ شده چند سال میشه؟ شکر یه دفعه دیگه هم چاپ شد این دیگه دلیل, دلیل یعنی استعدال علمی که نمی این اینه دیگه، اینجوریه و این نشان نفوذ و اهمیت و اعتبار شاهنامه هست ما با یه چنین کتابی سرکار کردیم. و حالا البته من توضیح زیاد راجع به صدفش و کارش اینا نمیخوام بدم شاید یه وقتی که باز پرستد تفکیر چیزی راجعی محطبان بگم که موضوع شاهنامه تازهیه موضوع خیلی خیلی محدود قصه های جنگیه جنگ یا مقدمات جنگ اگه یه داستان آشغانه هم توش هست برای اینکه که باید دوباره برسه به یه جنگی یعنی یه پهلمان زده بشه برسه کار میدون جنگ است و دربار شاه هم یکی وزنش هم یکیه یعنی از اول تا آخش به یه وزن در حال جنسان دیواره حافظ رو با کنید وزن مختلفه سعدی رو قضا روش کنی کنید انقدر از دم مختلفه این همه‌اش هم به یه واسه با این حال این تو اینو ساخته که آدم سیر نمیشه بعد چی به خونه خسته نمیشه در حالی حال که هزار بیت از این شاهنامه مال یه شاعر دیگه است شاعری که پیش از فردوسی میاره کرد دقیقیش فردوسی اون هزار بیت رو آورده دلیلش هم این بوده که گفت من این را بگفتم که تا شهریار بدانم سخن گفتن نابکار با وجود که دقیقی استاد خیلی درجه یکی بوده ولی این کار رو نمیتونست بکنه بگی من این آوردم که ببینین اگه یه آدم دیگری این شاهن منو میصاف چه جوری بود اون هزار پیت رو بخونید خستگیش خیلی بیشتر از اون پنجا و هزار پیت بود. یعنی فقط یک نفر بوده که میتونسته این داستان رو به این تحطیق بسته پیش از اون کسی نتونه بعد از اون هم یه سرمشق به این قشنگی جلو همه بود شهست زدار به جلا همه هر, هر کسی میخواست شهر بگی نمونش بود یک نفر از اون محله که فردوسی توش نشسته بود اصلا رد نشد یعنیت همه نزدیک نشد به هر فردوسی به دیواره به محله فردوسی هم نزدیک نشد یعنی اصلا قابل قیاس نیستن هیچ کدوم این کتابه که به تقدیر از شانهانه ساخته شده دلیلش هم میزان فروشش من لازم نیست گفتم دلیل ایلپیله میخواد دلیلش ای که مردم روش تاوزی خیلی این که این یه چیزه خیلی فوق العاده است. من تعدیرم اون که اون قرمه گذشته که دست میردم گفتم که فکر نکنین که هرچی شعر فارسی از اینجوری ها نیست اینجور اینا از نیون سی هزار تا شاعر پنج تا اومدن بالا شدن فردوسی شدن سعدی شدن مولانا شدن نظامی شدن حافظ پنج اینا از نیون سی هزار تا شاعر اومدن بالا فکر نکنیم که هر چهاری دیگر فلاش فلاشو کنی اینه عباده عباده شاهنام هم حالا ببینیم که این شاهنام این گوندگی توش چی نوشته؟ نادم مثل که گفته بودیم دوباره میگیم گفت روزخون پشمیکال هر مستمع تازهی تبشی نوندهی تازهی کهان رو شو از سر میگه ما هم هم روزخون پشمیکالیم کنم که هر کتابی در دنیا یه مقدمه داره معمولا و یه خاتمه داره یعنی اولش شاعر یا نویسنده یا هر کی میگه که آره من مثلا چطور شد که این کتاب نوشتم چرا این کتاب نوشتم چی منو تشویق کرد اون قدیم که به حضرت این شاعر باید زندگی میکرد بعد کتابش هم که نمیخواد چاق که نه که که مردم پشتیبانی بکنند الان نویسنده میتونه با پشتیبانی مردم و کلی که میدن کتابشو میخرند زندگی کنه. یه مقدار عقاید فلسطی داره اونجا اظهار کرده چه به دلیل اون از دانشمندان حد که شیعه اسمایلی بوده بعضی دانشمندان نگه گفتن شیعه زیدی بوده بعضی هم گفتن که شیعه دوازده امامی بوده برجت خیلی مطالب از اون مقدمه بل میاد خب مقدمه برجت مقدمه است جز اصل کتاب نیست. اصل کتاب سه قسمت بره. این کتاب این بزرگی اگر اگر توش چی نوشته جواش اینه که من میگم که به همین دلیم بیشتر مردم میگه بله بله آقا شاهنامه بله سند ملیت ما از خیلی کتاب مهمیه میگه خب این کتابه این مهمی توش چی نوشته؟ <تصفح> <تصفح> نگاه کنم نمیتونم یا میگه مثلا آقا جنگه یا این که نشد که شاهنامه سه بخش داره یکی بخش اولشه خوبهش میگن بخش اساطیری اساطیری یعنی میتالوجی اساطیر بالا میبینیم سی؟ بخش دوم شاهنامه که مهمترین بخشش هم هست بخش حماسی کیدای حماسی رو کافرش چی میشه دونم خاطر حماسی به زبان کافرش چی میشه ای بابا این صفه эпи эпи а а дозволить это фарон شون بخش تاریخی شهرش از همه آسونتره، اون اول میگه. بخش تاریخی از اول دوره ساسانی است. می‌دونم تا همه به یارو. توجه نوبلی تاجو فن نداره. باجو عشقانی با نیست. اون چه در این بخش تاریخی آمده؟ تقریبا همون چیزه که در سایر کتاب های تاریخ، مثل تاریخ تبری، مثل مروژ و زهب، کتاب های تاریخی قدیم، تقریبا همون ها بنابراین از این جهت به دوستی هم میشه گذاشت با، مثل این بخش، این بخش تاریخی، در حدود یک سپانشان هست. بخش اول که بخش اساتیری است از همه بخش را تقریبا یک ده همه هم بخش یعنی اگر شانه رو بو کام سیتا 2000 بیت. چند قسمت بکونیم؟ سه قسمتش اساطیری است. 17 قسمتش. خاموس است. 10 قسمتش طول. روشن چطور می‌دنم؟ حالا مطلبی که مون این است که بخش اساتیری چیه؟ با بخش حماسی چه خرد داره؟ اولا بخش اساتیری بسیار بسیار مختصر و فشورده دفعه که در اونجا از شروع شدن زندگی هر پیزه بشر که مثل امروز این همیشه زندگی نمیکردی که بشری که خدا خواهر کرده بوده لخت مادرزاق پای برنه تو بیاغون باید میدوید غیر درسته دیگه مواظب بوده که دشمنی نخورش شیری، بپری، پلنگی، چیزی نخورش خود چمه چیزی که بیاره بخوره، اون بشری اولی و از این بشر اومده لباس برای خودش ساخته خونه برا خودش ساخته پیونات رام کرده اینا چون خیلی قدیمه ما اما رو که نه همه بودن یعنی گاب همینجوری در اختیار ما بود پرورش فدیمایی ببریم بیف بذاریم این به فروشگاه کجا چی می خواهی در خریادی نه اینجور نبود خونه ساخته لباس درست کرده آتیش رو مهار کرده کشاوردی کردیم سنت روی دوباره اینا قدم هایی که اول بشر ورداشته برای اینکه بشر بشه شرح این دوره از زندگی بشر در بخش ازادگیری آماده و عرض کردم، این خیلی خیلی مختصره، اما در نهایت اهمیت یعنی این بخش پغل عاده بخش مهم است مثلا فرض کنید که فردوسی میگه که کی وقتی که پادشاه شد، اول در کوه جایگاه خود شد که اومد شد بر جهان کرد خدا، اینو حسین به کوهندرون ساخت جا ما حالا میبینیم که باستان شناسی و دیرین شناسی و مردم شناسی اینو تحیید کنیم یعنی بشر ابتدا جاش تو قارها بود به چند دلیل یکی اینکه هوای قار ثابت یعنی نه گرمای تابستان درش ما هسته نه سرمای زمستان و اونجا میتونن پناه دوبام اینکه که در دشت بشر که نمیتونست پای پلنگ و شیر بده بکنی میگره تنبالش میکرد, میکرد ولی در کوه چون مرزش کرد به راحتی میتونستو توی پیچ بره و راحتش بگم این است که اول بشر زندگیشو در قارها و در دامن کوه ها این همین فرم. بعد میگه که شروع کرده رام کردن حیوان هم باز اونجا میگه که هرچی حیوان بود اول همه رو شروع کرد رام کنه بعدها اولا متوجه شد که بعضی اینا هرگز رام نمیشه شیر مثلا رام میشه اما گرگ رام نمیشه گرگ هرگز رام نمیشه آنکه خیلی شبیه سگ هم هست و سگ اینقدر, اینقدر با آدم زندگیش به هم پیوسته ولی گرکیش رام میشه یا مثلا پیل رام میشه دیدیم که سوال میشه محکه که ترکوچه هم سری ولی گراز خوک وحکی هرگز رام میشه. اولا بشر تود کرد که بعضیت هیگونه اصلا رام شده این بسن به نشه در بگیم هم بزرگترین آفتهای بشر همین دوتا بودن که اسپورتن هم. بزرگترین آفت اقتصاد شبانی گرگ بود نه شیر نه فلن و اینکه شیر میموند یه دونه بز میگرف میره. ولی اگه گرگ از این بره گله تو از اون بره همه اگه بهش میذاشتن بمونه تمام اینا رو میپشک هر که هرس که شاید حالا من گرگ نبودم که فکر کنم تو مرزی که چه ولی فکر میدارم که خیال میکرده که اینا همه که بکشه هست برای اینکه تاقی آمد میشین سلیگه بخوره اینا هست هرس و درندگی شدید گرازم هم, هم تو گرگ بیا توی کشدار بزرگ چند ایکلی هندوانه یک جونش سالم نمیده همه رو میزنیم ایشکنیم هم یون رو میخورم همه همه رو برمیده این از که بزرگترین دشمنه و شهر که توش آنها هم خیلی اومده همین مطلب گرگه و گراد گرگ آخات اقتصاد شبانی، گراز آفت افتاد کش آورد حالا بکر دریم که اینا ما جوری با اینا رفتار میکردن بشر برای رهایی از شر اینا حالا با اون عقل اون روزش هل فکر میکرده به دو صورت افتاد یکی این که اینا رو به صورت تابو دردیر یعنی اسمشو نگیر برای که فکر کردم اگه اسم چیزی بیاره بیری میاد من یادم که ما بچه بودیم میگفتن شب مثلا اسم اغرب نیاریم اسم مار نیاریم برای اینکه بیاریم میاد جن و اسمشو نیاریم بگین از ما ترون <تصفيق> از ما ترون ترمون برای اینکه میاد بنابراین یک،, یک کارشون این بوده که به صورت در دردن یعنی اصلا رو نبود یکی دیگه هم اینکه بیان بهش رشوه ببیند قربانی برش بکنن و نیایش بکنن و بگن جنابه های ما نکره تیم و برخورم. ما اصلا ای به شما و روی علمه نقش گراز مکنن روی علم نقش چی بود؟ نقش امیزه نقش گراز رو علم بکشن برای اینکه بگن که ما یه نوع باوستگی با شما داریم جون ما, ما رو عذیفتن این دو طریق در حقیقت راه بودی که فکر بکردن که با این حیوان ها در صورت بعد از میون حیوان که رام میکرد که باز فرق نمیکرده گوشتخار و کار. از میون حیوان های درنده حیوانی که رام کرد و بزرگترین یار و یاور انسان بود و هست سک سنگ... سک حیوان درنده هست و گرگ در میافته حتی ولی بسیار با محبت بسیار باقفاست و برای انسان همیشه کمک بزرگ بوده الان که اصلا استفاده هایی که از سک باور اصلا باقر باورکر... کردنی نیست الان گله های چند هزار گوستندی رو دو تا بداره نیست من تو انگلیس یه رپورتاج دیدم اومرده چوخون یه سوتی داره یه انواج ماوراسته اولتراسان میده این به گوش ما نمیرسیم ولی میذار خود میزن سگه نیش نرسید باشیم بهش دستور میده آقا چنان این دوستاندار رو جمع کرد میعبود رو چیز میکرد رو اثر طرف یکرد اصلا باور نمیکرد تو سگه خیلی بزرگ هم نبید به گله ما نرخیر نبود، نبید دوتا سگه متوسط بره. ولی آقا اینا اصلا حیدن پس ما نمیده یا مثلا اخباز رو، پیخون شکاری رو تحبیت کردن که بره شکار میادن از میون درندگان از میون چرندگان هم دوزفند و بز و اصف گاب رو نگه داشتن هم؟ حقیبا؟ باقیشون رو کردن مثلا گوز نفستن داری که کاری فقط در نواحی خطفی و جاهای که هوا خیلی سرده جوازم سردیات می‌کنه استفاده می‌کنه شیر رو می‌گیرن گوشت رو استفاده نمی‌کنن ولی به طور کلی این هیبونات اهلی رو از اون که رام کردن دو دورقوی بزرگ یک بشری شروع کرد به پیداستن یکی یکی دامداری و یکی هم کشاورزی دامداری اول بوده اینکه فردوسی اونجا میگه که مثلا تا این باز مردم شدن همی مسابقه می میگه تا مدت ها اینا این حیواناتو پیش پختن بلد ولد نبودن مثل گوشت هم نمیخورد میگه زخها که اول بار ابلیس آمد و گوش خوردن رو یادش داد قبل از دو از محصول این حیوانات استفاده میکرد پوستش رو پشت میشه شیرش رو شد با عصف رو مثلا سوال میشدم اینا همه خیلی قدیم با بعد چون گاهی شکار گیر نمیمود و نمیتونستن این کار بکنن چون کردم ب... یعنی برخوردم که از این چه از زنی درمیادم اول بار باز اینا همه شانانو به صورت میکرد به صورت رمز اینا رو گفت خیلی خیلی به احتسار میگه که اول دونه رو میپاشتن بعدا محصئول برمین بیا دخت دادن و آب دادن بعدم زمین از قوت افت دا که میاد تا مدتی گذشت و هم که جمعشید مثلا آبیاری درست که 50 سال وقتسطح آبیای شد 50 سال فر ابزار سازی شد 50 سال طرفه با پندگی و تهیه لباس شد 50 سال طرفه فلان شد. پ ساله هستش 5 هزار سال بر بشر طولکششته. یعنی خیلی دوران طولانی ن اینا رو میگه که مثلا پاتیا ها مثل اول اولبار که بعض میگن آتش رو کشف کرد. آتش کششت نداشت. اتفاقا یکی از آافس های بسیار بزرگی که همه حیوانات و بشر هم از هم آتش میدون. همین علم اینجا در کالیفرنیا، جنگل که آتش میگیره مردم میگن برداریم چیزیم بریم نمیتوننش داره شیر از آتش بریدن آتش همیشه روی زمین بوده در نزی سائقه یا در نزی شدن گازهایی که از بیرون همیشه آتش بوده اون چه نبوده ماهار کردن آتش بید. که بتونن هر وقت میخوان آتش روشن کنن هر وقت میخوان خاموش کنه و به هر اندازم که می اینو بزرگ که خودشی کنند این نبوده اینو در شامن یکی حوشنگ پیدا کرد داستان قشنگیم برید کارید اینا مسائل اگر هم در موجه از جنگی حرف زده میشه که موضوع هماسه هست دو خصیل اونسه سه سرکیم صحنه های جنگی اون فصل در بخش اساسیلی می بخش هماسی دنباله اون وقتی که بشر بشر شد خونه سا آمد تو دشت وقتی میتونست از خودش دفاع کنه آمدتی دشت میتونست جلو شیر و پلنگ رو اینا درد اصله داشت آمد دردرد کشاوردین سوز کرد جامعه بشری دو گله داشت محصول داشت کشاوردین داشت. وقت نتیجه چی میشد یه دسته وحشی مینشستن تا اینا کاراشونو رو بکنن بچه های گوزفنده بزرگ چند کرره شطرها بزرگ چند مالا اصفا بزرگ چند می اینا همه جمع کردن میاد یا اینا گرندم بکارند چه بکنن خدا همه رو میادن حاصل شد میشن اینا هم میگوشد این بود که کسان بشری که متمدن شده بود و شهرشین شده بود فکر کرد باید که از خودش دکار و کسانی پیدا شدن که کارشون فقط دفاع از جامعه، این نظام کرد. اون وقت، اون کسانی که در این کار نظام و دفاع، فیلی کار مهم میکردن اسمشون موند به صورت یادگار و به عنوان فعلوانان ملی در آمده و بخش هماسی شهر این دوره است این دوره بعد از پشتی، یعنی جامعی. این خلاصه ای مطالبی که در شاهنامه هست بنده هم شدم وقتم دیگه تمام میشه خیلی حق دادم